بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آله و اجمعین اما بعد درس شوم از درس های سوره یوسف آیه دوازدهم ارسل هو معنا غدا یرتع و یلعب و له لحافظون برادران یوسف از پدرشون یعقوب تقاضا کردن که برادرشون رو باهاشون بفرسه که بازی بکنه و ازاد باشه و. هوای عوض بکنه بچنین با گفتن که ما هم ازش مراقبت میکنیم و انا له لحافظون مراقبت ازش میکنیم یعقوب میپذیره علیه السلام که یوسف را باهاشون بفرسته چرا قبول کرد درحالی که میدونست که اونها راستگو صادق نیستن اونا ادعا کردن که ما نسیحتش میکنیم ما مراقبت ازش میکنیم انا له لناصحون انا له لحافظون ادعا کردند یک قاعده ای ما داریم در شریعت و اونم اینکه علینا الظاهر و الله السرائر دل ها با خداست ما کاری به دل کسی نداریم ما مامور ظاهرین بعضی‌ها فکر می‌کنن این حدیث علینا الظاهر و علی الله السرائر بعضی‌ها فکر کردن که حدیث در کتاب ام امام شافعی باز کردن اونجایی که فرمودید رسول الله صلی الله علیه و امرتو ان اقاتل الناس حتى یشهدن لا اله الا الله بعد برداشت می‌کنه امام شافعی از فرموده رسول الله که من دستور داده شدم که بجنگم با مردم تا اینکه شهادتین را بگم اگر شهادتین رو بگن تلفظ بکنن کلمه شهادتین حسمن منی جانشون تنشون مالشون از من در امام میمونه اگر شهادتین را بگن نگر این کلمه را بگن اینجا هست که ما شفیه برداشت میکنیم میگه ظاهر ما مسئولشیم معمورشیم مامور پنهان نیستیم اون چیزی که برای ما آشکار نیست در خفا چی گذشته چه مکری چه دسیسه‌ای چه نیرنگی داشتن برادران یوسف ما کاری به اون نداریم ما چندین جا داریم در شریعت اینجا فقط تنها نیست ما در قضیه اصامه داریم اصامه ابن زید اصامه ابن زید در یک از جنگ ها مشرکی فرار میکنه در حین فرار شهادته میگه اشتن لا اله الا الله و محمد رسول الله او رو بر زمین میخواد گردنش بزنه یک از اصحاب میگه نکن شهادت این گفت گفت که نه این داره تظاهر میکنه داره تظاهر میکنه گردنشو میزنه خبر به رسول الله میرسه که فلانی اسامه، فلانی را کشت بایی وجود که شهادت رو را گفت رسول الله صلی اللہ علیہ نراحت میشه میگه قتلته بعد ان قال لا اله الا اللہ کشتیش به شهادتش رسوندی بعد از این که شهادت این نطق کرد و گفت اقرار کرد بر یک تایی خدا و نگانگی یا قال ايروس انه كان متعوذا خاص خودشو پناه بده از کشته شدن در امان بداره میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم همچنان تکرار کرد قتلته بعد ان قال لا اله الا الله اشققت عن قلبه عن صدره مگه باز کردی دیدی که در قلبش چی میگذره بس ما مسئول ظاهرین باطن با ما نیست با الله باطن با الله چی در خفا و چی در دل طرف می‌گذره ما مامورش نیستیم به این قاعده را اینجا الله بهمون به یاد میده پیامبرشه این آموخته و آموزه رو داره که اعتماد بکنه بر حسب ظاهر ظاهرا تظاهر کردن اینها که ما از برادرمون محافظت خواهیم کرد مراقبت خواهیم کرد با این وجود بهانه رو میاره یعقوب علیه السلام که تو که بتونی یوسف را نفرسه چی میگه یعقوب علیه السلام میگه قال انی لا يحزنني تذهبوا به اولیش من اندوگین میشم شما برید یوسف از من دور بکنید بر یه جایی دور از ششم باشه همیشه یعقوب باهاش بود هر جا میرفت یعقوب باهاش بود اونم هم هدفشون همین بود که یوسف را از یعقوب پدرش جدا بکنن انه لا یحزنونی اول من غمگیم میشم ناراحت میشم دلم تنگ میشه واسه فرزنده چون گفتیم مادر یوسف فوت شده بود و اخاف ان یاكله الذئب اصلیدوم ترس دوم اول غمگین میشه دوم میترسه از چی میترسه به قول خودمون حرف تو دهانه اونها گذاشت بعضی از مفسرین چنین میگفتن اونها بحث از گرگ نبود بحث از اینکه چه بهانه بیارن بعد از اینکه یوسف را تو چاه بندازن و بفروشن چه بهانه ای بتراشن برای پدرشون تو ذهنشون نبود ولی اینجا به قول خودمون حرف تو دهنشون گذاشت گفت که میترسم شما برید بعد گرگ او را بخوره اونها هم همین قضیه رو یاد اکشته گفتن ولی بله ما رفتیم گرگ دیگه خود گفتی که گرگ او را شاید بخوره گرگ هم او را خورد لباسشو آمیخته کردن آلوده کردن با خون گوسفندی و ورد نزد فدارش حالا میاد بحثش قال این نهول يحزنوني پس اول من غمین میشم ناراحت میشم دلتنگ پسرم میشه دومم من میترسم و اخاف و آن یاکولا هذیب و آنتو من هوا که شما غافل از شاسید سرتون که خودتون مشغول خودتونید مشغول کار خودتون گرگ بیاد فرزندم یوسف را بخوره خب اینجا بحث عاقبت اندیشیه ما همیشه باید عاقبت سند باشیم یک کاری که می‌کنیم به عواقب امورمون فکر بزنیم من این کارو کردم الان اینجا باید برادران یوسف فکر می‌زدن الان ما داریم این کارو میکنیم. چه بلایی سر یوسف ای که نوجوانی بیش نبوده چه بلایی سرش در میاد اگر تو چاه بندازن اگر بفروشنش اگر دور بشه از پدرمون پدرمون چی میشه آیا فکر زدن که شاید پدرمون سکته بکنه آیا بمیره دق بشه به قول خودمون یا یوسف در اون چاه خفه بشه غرق بشه تو اون آب یا الی آخر به عواقب کارشون فکر نزدن اینجا هست که فرق تفاوت بین پیغمبر و فرزندانش ما در میابیم یعقوب عواقب امور فکر میزد برخلاف فرزندانش شما برید و موازب باشید و حواستون جمع باشه بچه هست که گرگ درنده هست شاید بیاد این گرگ درنده این بچه را به قط برسونه و بکشه و بخوره قالوا لئن این اکلهو ذئب و نحن عصبه این ایذن لخاسرون قالوا گفتن برادران یوسف السلام. لئن اکل هذب اگر گرگ او را بداره بخوره و نحن عصبه و ما هم یک مجموعه یک باندیم به قل خودم یک تیمیم ده نفریم تنومند اگر بخواد گرگ بیاد او را بدره اون یوسف را این لخ... کسی که زیان کرده ما این ایذن لخارسرون ما دوچار خسران را زیان شدیم اینجا اقرار دارن به خسارت و زیان از دست دادن یک برادر اقرار دارن به تبهکاری خودشون اقرار دارن به ستم و ظلمشون اقرار دارن دارن ظلمی مرتکب میشن یک نوجوان این میخوان در چاهی بندازن حالا مسائل حاشی زیاد اینجا مثلا بحث اهمیت جمع یا بهش میگن تو علم اجتماع تکافل اجتماعی همدست بودن اختلافات رو از بین بردن کینه و کدورت رو از بین بردن خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعه دس الله بر ان تعيده الله نصرته الله بر جمعي جمعك قلبشون وهم دي صافي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان سووا صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم سووا صفوفكم صفه ترزكوني مرتبكني اگر صفته مرتب مش يعني ظاهرتك درست نباشه؟ سبب میشه که باطنتون خراب بشه. اولی خالفن الله بین قلوب بکم. قلبتون خراب میشه. کینه، کدورت، بغز. شیطانه تو دل طرف میاره. این چرا خوش از من دور کشید؟ چرا این،, این توریه قبیستا؟ چرا نمیدونم؟ اخب کرد؟ چرا نمیدونم؟ جواب سلامون نداد. چرا فلان کرد؟ شیطانه. بعد از این قضیه به ترسیم که شیطان حریصه خوصا گفتیم یک از مهمترین درس های سوره یوسف نزغات شیطانه من بعد ان نزغشیه خود یوسف اقرار میکنه شیطان اومد با نزغاتش با ایجاد وسوسه با اون وسوسه هایی که در دل برادران یوسف انداخت سبب شدّ كه وناح صادات ببرزان ببردراشهم وبردراشهم درجوه بندزا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الج في غيابة الجب وحين إليه لا تنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خبئنا خرائيا مرزمن، فلما ذهبوا به. بوی وجود که یعقوب گفت که من دلتنگ میشم و میترسم آخر راضی شد که یوسف را بفرسته باشد یوسف را فرستاد فلما ذهبو به یوسف را برداشتن بردن با خودش و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابه الجب اجمعوا کردن اتفاق کردن اتفاق نظر شد اختلاف داشتن حالا بکوشن تو چا بندازن بفروشن چکار کنن اتفاق میکنن اینجا بر اینکه در یک چاهی او را بندازن یجعلوه فی غیابه الجب در یک چاهی او را یه قاعده ای هست در بحث قضا و قدر میگه که قضا و قدر از حذر ما از توقعات ما پیش میگیره هر چقدر ما حریص باشیم هر چقدر ما دقیق باشیم هر چقدر ما مراعات بکنیم قدر الهی از اون مراعات ما سبقت میگیره چطور رالندگی می کنیم مواظبیم نزنیم به کسی کسی هم بهمون نزده ولی یهو میبینی یکی از عقب میاد میزنه تو مواظب بودی تو خطا نکردی یکی دیگه خطا میکنه اینجا هست که اون قضا و قدر تو بر حذر بودی حذر داشتی از اینکه کسی بهت نزنه ولی کن قدر از اون حذره پیشه گرفت تو یه چیزی میخوای ولی الله یه چیز دیگه میخواد اون چیزی که الله میخواد میشه اون چیزی که الله میخواد میشود اینجا اونا خواستن اون عزتی که یوسف داشت تبدیل به ذلت بکنه تو چاهی قعر چاهی هم انداختن نی فعلشون شنو نگاه بکنید بعدم به عنوان یک برده فروخته این برده هست. نمی نمیخرید ولی میخرید خاصن یوسفو خار کنن ذلیل کنن ولی قدر الهی بر خلاف میل اونها شد چی شده یوسف علیه السلام شد عزیز مصر در بالاترین پست و مقام امپراتوری مصر قرار گرفت یوسف علیه السلام بندگان الله اومدن جمع شدن که سر کوبش بکنن در پایینترین جایی که داشتن اونم قعر چاهی قرارش دهند ولیکن الله از اون قعر چاه او را در بالاترین مقام قصر و امپراتوری قرار داد یوسف نوجوانه همچون عیسایی که در گهواره برش الله وحی کرد که سخن بگوید یوسف هم در اون نوجوانی برش الله وحی میکنه این ابتدای نبوتشه ابتدای نبوته یوسف علیه السلام با وحی سوی الله حالا بعضی گفتن که نه الهام بوده و بعضی دیگر گفتن نه جبرئیل اومده برش وحی کرده چون اینجا به صراحت الله داره میگه وحیه به وحینا چون ما کلمه وحی به معنای الهام هم داریم الله در قرآن میگه اوحینا الی ام موسی یا میگه اوحینا الالنحل وحی کردیم بر نحل بر زنبور اصل که چگونه لونش رو بسازه خب این وحی به معنای الهامه ولی اینجا بر پیغمبری از پیغمبرانه یعنی به صراحت اینجا کلمه وحی به کار برده شده و اونم بر پیغمبری که اون وحی نمیتونه الهام باشه مجرد یک الهام بلکه فراتر از یک الهامه چون باید قلب یوسف تسکین پیدا بکنه. یوسفه او را در چاه انداختن و او را دارم میفروشن از پدرش، از محبوبش هم دارن جدا میکنن، مادرش هم فوت شده. به عنوان یک برده هم، یک عزیزی برده بشه هم سخته، خب اسیر بشه. اینجا هست که الله از لطفش، از مهربانی و محبتش این بنده را رها نمی کنه. اونجا وحی برش میکنه که قلبت آرام باشه. ای یوسف ما تو رها نمی کنیم. اونجا بهش موجه میده با وحیش. ای یوسف ترسکینات رو دارن میفروشن ولی در پی این کار اونها بدان که مسیری که تو درش واقع خواهی شد اون مسیر مسیر عزت خواهد بود به تو مجد میدیم که تو به جای بالا و والای خواهی رسید این وحی الهی بود بر کی بر یوسف علیه السلام بشارتش داد که تو را نصرت خواهیم داد و تو در جایگاه و در جایگاه و مقام بالایی قرار خواهی گرفت و شینا لا انهم بأمرهم. و تو هم به جای خواهی رسید در اون مقام عزت که به اونها خبر میدی در اون مقام اون جایگاه که چی توتعی کردن قشون چی بود و چه نیرنگی داشتن نهتونن به انهم به امریم ام ها این امرشون این مکرو نیرنگشون که الان دستیه که نشستم با هم دیگه یک دست شدن الله یوسف را باش مطع ساخت که بله این نیرنگی که الان بر, بر سرتو داشتن تو اونجا رسوواشون میگه تو اونجا مطلعشون میسازی از این نیرنگشون لتون به انهم به امریم هذا و هم لا یشعرون و اونها نمیدونن نمیدونن از این عاقت کار نادانن جاهلا. نمیدونن که تو را با دست خودشون عزیز میکنن اونا خواستن زلیلش بکنن ولی اون دست تیکه با اون یوسف را در چاها انداختن سبب عزت یوسف شد نه زلتش سبحانه کالله بحمدک سبحانه کالله بحمده صلی اللہ, صلی اللہ محمد و عالم